والنبي و و اللهم و ها که ما متحرز کلمات اصحاب در این مسئله از زمان شیف شد اگر کردیم که محور بحث کلمات اصحاب ما خیلی واضحه اونطور نشده لیکن در حیقت نقاط فنیش رو ما در این دروزه برای میکردیم نقطه اول حساسی در این بحث این است که مهیار در ظهورات کلام آیا کشف مراد متکلمه از کلمه در ذهنیتشون این بوده که محیار در بجیر رازی ما به مراد متکلمه بودنیم و بودن که این راه زنیه این وقت میگه آبیار این کلام یک دلالت زنی داره به مراد متکلم طریقیت او یک نهر طریقیت است. و حریدتصاب اینها بحث حجیت زوایج و مرحوم شیخ در این رساله شون مطرح از اگر چنین رساله‌ای که مرحوم شیخ کتاب رساله از شیخ میذونی در شیخه رساله رساله 4 رساله 7 رو توضیح بعد ها اسمش شد فرائد ال اصول دین اینا اصلا بعد از شیخه که از 100 رساله فرائد ال اصول بود این در واقع چهار رساله میده این رساله اولیش هم اسمش رسالت رو خودجیت مدنه اسم کتاب اینه که بیانه شد و برس و فراده رسول و, و و اصاسا مرموم تو این بحث بحثش راجع به این که اول رساله می قرد داره این رو با عنوان تمیهی به مقدمه آورده. توضیحات این رو چند باره عرض دیگه تکرار نرمون اصل این رساله زنه رساله شیف در زن. هم متعرض خرطه شده. وقت در زن بعد از اینکه که تنسیس ارس می که اصل اولی داری جزر عمل به زن تا زن رو خارج شدن اول زن حاصل از زباهر سلام این اولی شد سفر این مطلب بعد که اگر یاد مبارک آن می شده شد نه همی کردن بعضا تقسیل قابل زن به مراد پیدا رو شدن یا معدم و زن پرینه برعدم و خلاف نباشه داخل. از تمام جب مسئله و محیط مسئله در اینه که ما از کلام زن به مراد پیدا می کنیم رسیدن ما به مراد یک نهد زنی این یه مثلکی تفاصیل و این صحبت ها که شده این بوده و از کردم در کلمات مرومشش اشاراتی شده اما نقطه اساسی در میان اصولی از قدیم از همون اوائل هسته صحابه بگیریم تا زمان ما با شدت و زد بیشتر سر این نقطه بود که ما یک اصول اغلایی داریم برای ما را تعبدیم و دقل بکنه مثل اصحات الحقیقه مثل اصحات عزن و یه اصول اقلائی تحبدی داریم برای اصول به مراد مدخل به هم که من از عبارات شیخ مجموعه عبارات شیخ نفهمم و اونی که مراد استاد اولا استاد خوشون یه مدد تطریق نفهم اینکر ظاهرا ظاهرن هم همینه و اونی این که ما چنین مددی و اصولا نداریم اونی که ما داریم حجیت زواجر کلامه اون بحثی که کاشف از مراده و مراد او اینه این با یک اصل دیگر و اغلابی احساس میشه و اون این اصل اینه که هر کسی وقتی صحبت میکنه اون مراد جدیش رو نمی میکنه. رفتی به دلالت نداره رفتی به آلم لفت نداره حالا اسمش رو یه مدلول سیابی او اشاره کردن من حواسم هست که این تغییر مدلول خالی از مشامهه نیست چون دال میخواد. این استشون مدلول حالی مدلول سیاقی یه نوع مدلول سیاقی است اونی که مدلول لحظه آب بیار آب است و باغ و یار آوردن به اصلاف خیلی از آوردن در وقت و مفاد جمله این ظهور کلامه و اما اینکه این مراد متکلمه و ما میخواییم به مراد متکلم برسیم این جزء دلالات وضعی نیست جزء وضع کلام نیست ولذا ما به حسب اون برنامه که در بین اقلا هست ما به دنبال اصالات الحقیقه و اصول تحبودی نمیدیم خود کلام باید ظهور داشته باشه این فرقی این قول اون خود کلام باید زهوده شد حالا به جای اینکه این دو تا قول رو بخواییم بین این تعریف جدا بکنیم قول اول ظهورات رو از باب زن حجت میتونه قول دوم از باب قرد حجت میتونه نه از باب زهر اصلا این بحثی رو که شیخ مزهر کنیم اصلا اول بحث انده محس کردیم بعضی از مواردی که شیخ استثناء کرده از زن اصلا زنی نیستن اینا قطعی هستن یعنی وقتی گفت آب بیاد ما در قرص چون از که لغت اون غایت اساسیش تفهیم و تفهم دقت بکنیم یعنی هم من تفهیم بکنم هم طرف مقابل تفهم بکنه. هم به گردیم و اگر من قرزم از آب مثلا شیرینی بوده بگم و اون طرف نفهمه دیم. لغت نیست به لذا ما دائما عرض کردیم ظهورات باید در یک دایره اجتماعی قرار بگیره به اون بحث عام متعقبه به زمین زمینی که بعد در افراد عام برمیگرده عرض کردیم این کلام که ما یک عام میبیدیم یک زمینی بود به بعدی بود برگرده این عرفی نیست عرف ما نمیتوند تارو که <تارم> نمیتوند <تارم> <تارم> مثلا بگیم علما ایشان منظر من آمده و به آنها یعنی به آنها یعنی به هاشون علما مطلقا ادوا و ادوا و اصولی آنها برگرده. یک قسم از علما قطعا این ملای شامل مفاهیم نمی کنیم. اگر طرز کردیم در قرآن هم یک آیه آمده که غیر از این نمیشه این فوق الشبهه بگیم کلام مجمله یا باید به قرائت خارجی مراجعه کنیم برای فهم مراا ولی به نظر ما مجمل نیست شون عرض کردیم متلقات در قرآن به معنی رکیاته اینا متلقات با آم گرفتن گفتن به هم نه حقا برده نه این به هم نه زمیر به ما بر برمیگرده نه اون مرجع زمیر هم رکیاته بس اون مرجع زمیر رکیاته اون آیه ام ابهام نداره نیست نیستی به بعضی برگرده اینا به این آیه تمثل کردن رو یه بحث اصولی درست کردن من عرض کردم ما قی از سلمت همه این اصلا ده اون دقیقه نحنه ورود ما تو بحثی جوی که ما معتقدیم اگر چنین چیزی حالا در کلام آمد این شبیه معماست شبیه لغت که من یکو عام بیارم زمیر به خاص برگردیم این کلام نیست ما در اوف اینجور صحبت نمی کنیم ممکنه به خاطر بعضی هستی ها مثلا پس کلام مجمل بیاره یا کلامی که زمیر اشتال داره در ارجاعش لیکن این کلام غرفی نیست به اسطلاح یک نوع اون مثال معروف داره که اصلاحشتر برو که لعن همین رو مهمونی بکن و این خلیبه این پادشاه به من امر کرده که لعن هر یه و شما هم لعنش بکنی این رجعانی چون حلیه میشه کلام میشه که کلام انسان مجمل بیاره حالت توریه بیاره اما این کلام عرفی نیست خوب دقت بفرمایید حتی معیار طبق این تصور دلالت الفاظ بر خودش یعنی ظهورات عرفی قطعی هستند نزنی اون نکته زنی بودن چون راه به مراد گرفته دقیق کنیم چون طریق به مراد گرفته بسه طریق زنیه و طبق این تصور ما کاری به مراد نداریم ما میگهیم این لفظ رو حوث این معنا داریم من نکاتی رو چه منشه این اشتباهات شد ارسیم میگه تکرار نوحب بکنم میگه جای حالا دقت میکنیم ما از این مثلت نیستیم تعدیر کنیم به قطعی بودن دلالت یا تعدیر بکنیم به تعدیر دیگری این دلالت الفاظ ظهورات الفاظ از یک بابی یک نوع میثاق عقلانی است. اسمش رو میگن این یک میثاقی است این عقلان. آبیار به این معنا، نان به به این معنا، نان به به این معنا. همین معنایی که من تفیل می شما تفهّم می کنید. یعنی هم من اراده میکنم کنم معنا رو و هم شما میگید فلانی این معنا رو خاص. ببینید و اما مسئله این که این مراد جدی هست یا نه ارز کردم این ربطی به درست لحظی نداره از این دیواشواش مناقشات ما با کلمات مرموم استاد یا شد ارز کردم ظاهر کلمات و استاد مثلا هی که به رعایت حساب را حالی فعبدی ظاهرش اینه که همین مسئلکی که ما خیلیم عرض بکنیم دارن و اون که عباره از این است که ما قائل بیرمی و میساق و اغلالی باشیم و دلالت رو قصیهی بدانیم نه زنی شایی زن نداره بله این مطلب با بعضی کلمات دیگه ایشان نمیسازه اگر یاد مبارک آنون باشه ایشون دو تا مدلول تصدیقی برای کرام تصابه که مدلول تصدیقی به نهر اراده استعمالی مدلول تصدیقی به نهر اراده جدی. حالا امیده میادار این اراده جدی رو توضیح دید کمیدیم این رو, رو چنیس بکنیم این مدلول تصمیقی به نحوه اراده جدی برای کلام این چند تا احتمال داره خیلی حالا اردار از توستاد دارن یک چی رو یک این که متکلم اون چه که ظاهر لقظه شه مراد جدیشی این مدل... اسمش مدلول اسمش باشن مرام استاد مدلول تصمیقی به نحوه مراد جدی. این منظور تسخیری نیست، این اصلا منظور کلامی نیست. این یک منظور سیاقی است. یعنی بنای و اوغلا بر این است که اگر کسی صحبت کرد این داره جدی صحبت می‌کنه. بنای و اوغلا به این است که این الفاظ داره یک معانی و پشت این استعمال هم یک اراده است. خودت بگو. اگر گفت آب بیا، مرادش شیر بود. اگر گفت نان بخار، شیری شیرینی بود. خب میتونم این آدم متعارف نیست دیگه دست نگرد وقتی یک دو مورد از این آقا دید این که کلام رو جا به جا محصف کرده دست نگرد اینا مال موجود سیاهیه یا مزدود از حالی این به مزدود کسی یک کلام نداری که بره اوستاد قرار برده این که اون ظاهر کلام مراد جدیست این یک بنای قطعی اغلاهی البته من توضیح دادم فرده بین مدلود سیاهی یعنی بین اونش که از سیاه ما در میریم با اونش که از لفظ لفظ قالبن محدوده سیاه قالبن قرینه یا حالیس یک کمی امهام داره خود دقیق بکنیم لفظ قالبن اما سیاه چون سیاهه و قرینه حالیسی نظر ابهام داره و لذا ارکردم کرارن و مرارن در قوانین یکی از نکاتی که در قانون هست باید چنگ بشه خوب دقت بکنه اون مطلبی رو که قانون گذار میگه با مغلول لحظی واضحه اول بحث و جزاه رو متعرض و دو دو اگه نکاتی یکی از قانون گذاری شه در اینکه حالا در مقام خدا قانون چه ملاحظات باید بکنه یکی از شرایط قانون گذاری اگه موافقتش این مطلب مجلس قانون بذاریم <تصفيق> یکی شکیله که خود مادده قانونی کاملا واضح باشه هیچی نوع ابحامی توش نباید باشه اینجازه شرارت قانون بذاریم هیچی نوع از اگر ما برطرد مثلا میگن مسئول و مقددت برداره مادده قانونی رو جزو مسئول حساب نمی کنند تعمال بذارنه مادده قانونی چنش اینه که سریع واضح معین، محدد، نه مجاز توش به کار برده بشه، نه کنایه توش به کار برده بشه، نه هر چه مثلا لفظ مشترکیش به کار برده بشه، نه لفظ منقول. اینا جزء نکات فنیه. و ما اینطور می‌فهمیم اصراری که در قرآن هست به لسان عربی مبین این اصرار هدفش اینه که چون این شریعت مقدسه و عنوان شریعت خاطر مثره یکی از نقاط خیلی در جهت قانونی اصلا در شریعت قاتله مقایی میشن با درشن باشه نه فقط قانون بزاری راجب خدا راجب قیامت در بخش میکنی این هم باید لسان عربی مبین این باید به یک لغت واضحی باشه و لذا عرض کردن در بحثی بذاشته این آمالا گفتن اگر مولا به عبدش اینجور گفتن از باز باز کلام مجموعی باز دنبال شده از این منشأ تصور آلا همین شده رابطه عبدال مولا رو تو قانون اوبردن این درست نیست به قطعه رابطه عبدال مولا را نباشت تو قانون بیاری خطا در اینجاست آقای از بگم دیگه خب گوجه که حجت سی عبد که اینجا گفتن که به عنوان حجت اصولاً تو مواضع ظهورات ما نباید دنبال حجت باشیم اول ظهورات ثابت بشه به مندار ظهور حجت است این اون چه رفته <تصفح> از حجیت وارد ظهورات شده چون چطور نمی از راه حجیت از بیگاه حجیت وارد ظهور شده این اداره ظهور کردن به نظر ما کاملا برعضه اول باید کلام ظهور منعقد بشه برای کلام اون وقته که ظهور منعقد سو صحبت حجیت و لذا اگر موظا هم کلام مجملی گفت و عرضش انجام راهی کلی میگه طورو و من میگه نه نیاز او قدیل بوده نظام از بوده نظر اولا مسئله نظام رد عبد که وجود نداره بر هر زمین چی باشه این مذممت درستی غلطی این مثلا مولا هم هم نداره عبدش رو به امور مجمل معاقبه کنه و مؤاخذه کنه چه حقی داره به خاطر الفاظ مجمل و او مؤاخذه بکنه چه این کار انجام نداره مگر کلام واضح نبود نفهمم چی میخوای تو تو اینان میخوای چی میخوای آب می‌خوری من نفهمیدم یه لفظ مجمل رو به کار بردی اگه داشته خاصا خوب همین خود دقت بکنه اختلاف و اساس البته عرف میکنم در کلمات رساله مصطفی بحث اصلا مطرح نشده. لکه در بعضی ایشان مثلای عبدال مولاست در بعضی عباراتیشان رجیت بعضی از ایشان مراد بعضیشان کسیم به زهور ما این مقنا رو کاملا روشن کردیم زیر بناهاش روشن کردیم ببینید ما دنبال کشف مرادیم یا دنبال خود سهور لخصیم اون مرحله کشف و مراد رو ما دنبال شیدیم اون یک مجلول سیاسی اجتماعی ما دنبال اون قسمت مثلا. یعنی اگر فهمیدیم یک یک بار یا دو بار کلام رو کجب کار بود اصلا به کلام او زبور قاعد نسیم پس یه بحث راجع به موانس مراد جدی در اصطلاح آقایان همین بحث تتابقه به قول مدشت اراده استعمالی با اراده جدی اون مراده استعمالی همون مراده جدی این ها تماما هیچ کدومشون مدیول تصدیقی نیستن این مراده جدی این یک عمر غرفی اغلائی ارتکاز اغلایی یک نوع میساق اغلاییست است. وقتی کام واجنده‌ها دادن یه همیشه اگر مهم باشه قابل اعطیا انجام که احتمال می‌ده انجام می‌ده این به قبول هم به در نمیاد این ده قاعده اهم و مهم و اهمیت محتمل و قوت احتمال رو باعث از ظهورات ما باعث ظهورات بعدش ما این رو اجازه ندید مولا طه سلام مجلل دیگه عرض اقلالایی نیست. این ظلمه دارد. فهم از ما بخورتان بگیم بهش همچه اجازه میدیم. نه اینکه یک مولایی با تبختر خودش همچه کاری با عبدش بخونه. ما بیایم اون به زیر بنامه و اصول خودمو قرار داشتیم. اینکه درست میدیم. اگر همچه مولای همچه کاری با عبدش کرد میشه کار رو در دیگه. بسید کار قبیریه. چی درسته بخوایی این رو ما اگه یه مولا با عبدش حق نداره ندام حق نداره با ممضوعش این کار بکنه و از اون بستر ادوه ها شریعت خاتمه این کار این خیلی بستر اون چیه خب پس تا اینجا اینچالله که آلا روشن شد که اصولا دو دیبگاهه اینه که شیخ آمده و آقایان بحث زواهر رو از اصالت عدم و حجیت زن خارج کردن روشن بشه چرا بحث زن نمبره گرده؟ چون زواهر و کاشف زنی از مراد میدونه ما اصلا گفتیم دنبال کاشف زنی نمیدیم خود ظهور کلام رو بگیم اسمش رو داشتیم میتاق اغلالی. نه از باب کشت زن برشت. پس ما یک میتاق اغلاوی داریم طبق میثاق اغلاوی باید برای کلام ظهور منعقل بشه این ظهور را هم با اصول خیالی مثل اصافر حیثه درسته میکنیم باید کلام برای ظهور و اگر نشد موجیمه ده و این که اطرار بکنیم اجمال رو با تعبود برداریم این ظهور درسته میکنه و از که زواهر عبارت مزموستا در برد جا و شیع به ادهی ظاهرا همین محنا را اراده کدار رو تفریح همین یک وقتی هم متعرض شدم و رومانستان خب سالها بود شد بیشه از سی سنگ سال مبناه شدیم بود که از شای نزده سی سال بود شده کسی که سوتشارتا مبناشون برای این بود که ساق کامله زیاد از هر کی نقل بشن هر کی واقعا اثناد اسنادی که منتهی به معصوم بشه اشتباه نشه چون بعضی از رواه کاملا به معصوم منتهی نميزاسون مثلا کلام ابو هارعه آلیشه منو کلام عبداله نوازی اثنادی که منتهی به معصوم میشه نظرشون این بود که تمام اون احفاض رواس سغثن مگر اینکه تعارض جمع تعلیل بشه حالا چون مبانیشون خیلی واضح نیست و یعنی واضح توضیح داده شده من تاریش مولداری بعد ها در سال 1409 قمری یعنی 4 سال قبل از وفاتشون 1613 وفاتشون 1603 یک ورقه ای که از نجف اساساً من ایران بوده و چاپ کردن تاریخش هم اون تاریخه نوشتن بعد از اینکه ما به زیاد مراجعه کردیم دید خیلی از ذوقات مطعونن ضعیفن فضاون و ظااهر نمیشه عبارت اول کامرزیاد رو به این معنا بگیریم و لذا للرز علا خلاف ظاهره هم که بر خصوص مشایخ یعنی لفظ ظهور داره در جمعی طبقات لیکن این با نمیشه نمی شود که برای مراجعه به کتاب این هم چیزی هملن للرز علا خلاف ظاهره هم مکنی بر خصوص مشاید. پس خصوص مشایخ به راسته ایشون سره اشکال ما اینه این, این همه همین نقطه همینجاست بحثتر اینه که اگر لغز ظاهر در یک معنا بود به تعبیر خودمون بعد این ظاهر با واقعیت نمیتازه و حملند لغز علا خلاف ظاهره هم بر برمشاید کجا ما یک قایدی و داریم که هم لغز و خلاف ظاهره داشتیم این چه قایدی و این اختلاف ما اختلاف این فرق بین مبنای ما به این مبنای تبدیم این هملن لفظ علا خلاف ظاهری یعنی شیفی چه غایی اوغلایی یعنی خب شما میگه لفظ ظاهری در یک معنا درست این معنا هم نمیشه اراده باشه بسی که لفظ مشمن نمیشه این قدر متیقن هست ب... حالا یا مرادش اینه یا مرادش این چیز دیگری باشه یا مرادش اینه که هر که اون افراد زعیف و تدابیری که شما میزهی من سفه میزنم تا زیگه نقصیشان نمیان قواهیت ما خباب عبارت میشه مجمن هم دقت مکنی ما هر طبون اینه که اگر خواستیم توسیق در بیاریم محسوسا در توسیقات آمه من چند بار این توضیح آمه یه اصطلاح یه بین مترسیمی داریش داریم ما بیران توسیقات آمه مثلا من روان های نبیامه من روان های جفران وشیم مثلا بیم با مثلا. ما اونجا از کردیم. توصیفات عامله غیر از اون جاده متعذره خودش اون لفظی رو که به کار برده شده باید صریح در توصیه باشه مثلا در جعفر و شده ربا عن و ربا عن ربا این کلام ایجابه یعنی مثبت انحصار نشده اگر گفت لوا میاره به الا عن اون توصیه عامه اما گفت ربا عن استقاص ساکته یعنی شعن توسیق آم تعبیری باشه که مشعر برای انحصار باشه مشعر نبی اومد لم یربه و لم یرسل این خوبه این تعبیر بوده در توسیق آم نمیخوره اما روا انسقاب در توسیق آم نمیخوره این عبارت کامل زیاره یا بگیل به هم تعبیر شما ظاهر خب ما اگه اخذ احزب ظاهرون چه مشکل داره فوقش توش تزاب هست و زاه هست مرسل هست و خب به نظرشون هجده درست داریم. چه مشکلی؟ چه مشکلی داریم؟ میگی تویش راست هست. این نظرش این بوده که مرسل من قبول دارم. قبول دارم. هم قبول داره. چون موسالش از سبایی قبول داره. چه مشکلی؟ این حملنده لغت علاقه لبزه کجا لازم می‌یابیم؟ یعنی ما به ابزار از قدم خودمونو بیاییم. این, خب این تعبیر که حملنده لغت علاقه لفظ ظاهره این تعبیر رو اصولی نیست. ما نمیتوانیم به خلاف اگر یک معنای ظاهر اراده نشد دقیق کنید پس حتما یک معنای مراد هست اون معنای غیر ظاهره درست اون آقا یک معنای اراده کرده اما برای ما حجیت نیست چون حجیت تابع ظهوره شما اگر آمدین در یک روایت ای گفتیم باید اون نکته به جایی درسته که روایت ظهور اروفی داشته باشه چرا این مدر اصحاب ما با معلوم شکل مخالفاً در این جمع های در جمع تبرد و چون این جمع های شکل به ظهور نمیرسونه رسونه مشکل کاری نمی به فرق میکنه مشکل کار چی؟ مشکل کار این است که به هر نحوی شده مخالف باید با هم جمع بکنی عزیزم اصل اینکه قبل قد قبالیون در اصحاب ما در و در اصحاب ما بوده من مخالفم عرض بکنم این راه درستی نیست این راه اصولا راه درستی نیست باک خارج اینجا برسه که کلام ظهور بر سنت بشه به مجرد این که و لزوما چند بارم عرض کردم مرحوم صاحب جزو موجب مخالفت نشه من عرضو بین اصحاب ما اگر افعلاتت عرض هم بر کراهت بشه صوم تحمل میکنه تا با تعارض بشه فعل این واجب ولا سفل این حرام چرا اگه را بگی فعل ولا سفل کافی نیست این هر واسه را گفت این معنای صاحب مدارک این توضیحاتی که ما ترش کرد سر این که این علمای ما و علمای اهل سنت در طول تاریخ اختلاف تنچی بگردن یه یکیش اینه که اونا خواسته هر جور شده به لفظ عصب ولو ظهور نداره ما ما حل اینه سلام قبل از حجیت باید ظهور منعقل بشه خوب دقت کنید لازم وجمان بشه بزنید. اصلا متشابهات قرار این معناش بحث زواهر کتاب خدا ما آیاتی اصلا من ان ارز الله عرض میکنم آیه مبارکه آب اجزوره فهمیدم من ارز میکنم اصلا آیه مبارکی که قرآن متشابه و محکم داره در شتاب با نصارا آمده این متشابه و محکم داره که ما در حسلامی بین بینه خودشون فرض کردن اصلا معقولی نیست که خدا به نصارای مذہب رو بگه متشابه با معنی دیگه ای داره چه نه استعمالی داره با نصارا صحابه باید سوال بین خودهای این باید قفیل این معنی ظاهری باید میگم ترفه اصلا آقای آقایان ما توجه نکرد این آیه را با قطع نظر از مخاطب برداشت معنا کرد سوره آل عمران چهل آیه و قیل آیه وقیل کل سوره دفعتا نازل شده تو اجل مبارزه اول اولش قطعاً مخاطب اول اول قطع این آیه 4 تا 5 از سوره آل عمران است قطعاً مخاطب نقرار این این آیه ها محکمات شابه رو یه آیه بیشتر در کل قرآن نازل خب نه نه نه نه, نه، دیگه ما یک مورد عالی محتمل در قرآن داریم مخاطب هم نصاران نه ها این که آیه قرآن این, این آیه شابه گفته شده است یعنی خدا ما این بگیم که خود این آیه قطعاً باید دارای یک دارا دارا معنای واضحی باشه که پیغمبر با نصار رو صحبت کنه اما که خود آیه خودش باشه بخواد با نصارا صحبت بکنه سوره آل امرال یا 40 تاش یا هشتاد تاش یا کلش از تواصل این سوره این که اینا تاییدن آقا درسته چون که از آیه نظر نجام اومده ها این مورد که آتون این آیه که این آیه دیگه این آیه که تفسیر میکنه یک دانه آیه در کل قران اونم مخاطب با نشاره. نمیشه با نتارا سلام و مجمع صحبت کن نمیشه با نتارا سلام به نظر تو ذهن من اگر حافظه نگاه که مایی که کامپیفیت میشنن مرموم آیه تواسبایی توی علمیزان بزنن از این 25 تا 30 احتمال در آیه داده ایشان در ذهب همین آیه اگر که که در آهوی نداه بکنن مرموم آیه تواسبایی نمیشه با نتارا یک آیه رو کسی کن احتمال داده لغت محابر تو شو همه چیز ما رو دار یه چیزی چیزی به احتمال داره من دارم همین رو میگم این تمام بحث ما برای جمهورات همینه نمیشه با مسیحی در مقابل مهاجر کلام گفت که علمای اسلامی میشه اعتماد کنه خالصیو مهاجری چیزی رو دوره کلامیه اصلا <متحدث> خیالش خب رو ندارم سر البته خیلی باحاله مباهله میگه تو فاطمه. آیه اولش هم واجبه بحثه تو قرآن در سورات اولی اول اولش اول, اول سوره قرآن اول آیه سوره آل عمران جلالت در روشنی و بیان میکنه. این حاجی میگه قران اینجوریه. این آیه میفهمم ها. اولا دو گفتن خود آیه بوده اولا بحث خود لا, لا الله الا الله شما گفت من بخوام بگم تعبیر به که قرآن متشابه است و محکم در قرآن یک بار آمده اونم در مخاصبه با نشارا این که دقیقاً معنی واضح باشه پس هیچ کسی تو معنی نشه ایجاد بشه حالا بعد از سوره تواتر خب عادی شد تلخ اجره قابل ما سو جزا اون که این واضح باشه اقتضای کلام اینه دیگه خب غیر از که سی تا احتمال دادن این در مواجه با دستاره از دستی که گمان نشون میدن بودن شنوند مواجه با رسول الله رسول شهر بودن میذه که الان موجب روی کسانی نتیجه میده یه سر معقول نیستیم چی؟ این همون نکته حجت زمامهایی که ما الان حال دشوار میکنیم خود آیه اولشون در سؤالی ما آیات اولش وضوح داریم. لا. از همه اول من اونجه صحبت یک صحبت مهاجه با اونها و مثلتی که قابل تطمیمه یعنی ما باید بگیم این آیه مبارکی یک معنای واضحی داره که در مقابل احتجاج با نسارا به کار برده او خب مقطعی موقع تاییه هم داره واضحی داره نسارا داره خب بحث دیگری داره که شده در دوز مجملات قرآن اون یه بحث دیگری داره که مثلا این چه نکتهی بوده از خود پیغمبر چی نقل شده از خود حیمه چی اون یه پیچی خاص خودش داره آره؟ بله اون یه پیچی اون موقع رو کلان بحثش رو کنار خاص رو داره <تصورت> <تصفيق> لا لا این بحث دیگه بحث تفصیلی <تصفيق> بحث خودمون عمق باشه اجازه‌ی علون بحث تفصیلی بشه بحث زواهد پس یک مراد جدی در حقیقت در اینجا اینه این اصلا نباید مراد باشه مراد جدی مراد جدی یعنی مَجْلُول جدی مَجْلُول مراد جدی مراد ارادی مراد به مغایضن یه بحثی که عرض کرده من اشاره کردن سابرن دوم از این که مراد مراد یه بحثی باشه که در قوانی وجود داره اونجا بیاییم بین مراد استعمالی با مراد جدید فرقید این درسته در قوانی وجود داره این بحث موطن دینی هم نداره این در کجا میاد در قوانی جایی که اول عام میاد و خاص میاد میان میگن آم مراد استعمالی خاص مراد جدیهیست روشن شد این مراد جدیه هم چی؟ اگر گفت اکرمال علما این میگن مراد استعمالیش کل علماست اما مراد جدیهیست اونیست که بعد دیگه لا تکرم خوست آقل علما احسن. نه آخو آقایی که متکلم اراده کرده بله خب من ارزیم معنی از بب ارزیم خارج اون هیچی معنای دوم که اصولی بیشتر اینه بیشتر مرادتون اینه. یک مراد استعمالی تصور می‌کنن با یک روشن شد با یک مراد جدی مراد استعمالی عام مراد جدی خاص مراد استعمالی مطرح مراد جدی مغایر این اصطلاح مراد استعمالی و مراد جدی در قانون اینه. روشن شد؟ و از اینجا هم روشن میشه که ادهه از علمای های اصول سنی ها شیعه ها الان تو ذهنم نمیشه چه سر مرتضان جز اینا باشه اصلا اینا منکر الفاظ عمومن منکر که ما در قوانین عموم داریم اگر کسی منکر عموم شد دیگه این دوتا مراد پیدا نمیشه همه شید براد جدی چون این نکتشتی شد اول اول باید بگه عموم اراده شده به مراد استعمالی خاص به مراد جدی اون گسه نداریم عام نداریم وقتی عام نداریم مخصوصا این است ایشون به این قاعده ما من عام من خاص مادام همه عموم تخصیص خوردن پس ما آم نداریم کسی که این حرف بزنه در چی می‌خواد بگه خوب تحلیلش اوستر شو؟ شد در واقع دو سو مراد نداریم یا من مراد جدی دارید کسی که میگه ما عام تعمالی برد اینی که مرادهای خودی از مدلول مدلول تصدیحی به اراده استعمالی مدلول تصدیحی به اراده جدیمانه میدید این عبادت شرم در اصول ما الان متعارف شده این نکته اصولیش در آن مخاصه نمشنش دو نکتی اصولیش نکتی اصولیش در آن مخاصه اینو آماناً گفتم ما یک عام و اصولی داریم یه خاص داریم عام مراد استعمالی است خواست مراد جدی یک ازده یا بوده ما اصلا عام نداریم پس این دو تا مراد ازده یه هم که خواهر آمان اینشالله بوده ما عام کتابی یا مطلق کتابی نداریم یعنی این نهره کار که عام در یک زمان بیاد محصوصاً رو سفرکرات شیعه که هم اشاره کردیم هم در قرآن بیاد در زمان پیغمبر بیاد خاصش در زمان ما صادق بیاد باشه که خاص خواست بعضی خاصا تو زمان بنیات الله بیاد پس یک مشکل کار در اینجا این است که این نحوه های تفصیل هم باید روشن بشه ما یه لحظه تو بحث عام و خاص اشاره کردیم مثلا توضیحی میگه هم تکرار میکنم خیلی طولانیه این را وارد این مطلب اجمالا درسته اما تفسیرا مرضی با بحث بشه که طول اصلا مورد سوم که ان شاء فردا متعرض میشه این دو تا مورد سوم که بوله بحث بتون و بتون قرآن که مراد جدی مراد اون بتونه مراد از ظاهر مراد استعمالی است بتون مراد جدی این معنی سوم فردا عرضش چون استاد یک معنا برای مراد جدی گفت ما سه تا احتمال دادیم این احتمال سوم رو فردا ان شاء و ایجابن درسی می